کنم خبره ولی نه بلکه درست گفتم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله و آل خَیبین طاهرین معصومین لاذ دائمه تعالی اعدائهم اجمعین اللهم اغفر لجميع و وارحمنا برحمتك یا ارحم الراحمین از شد که این راجع به وحث سبب معنه بعد بعدم مرموم شیخ نسبت بین سبب و رو بیان کرد چون که اثر علمی نداره اثر فکر بگیم حالا نصبتشون چی باشه لیکن اجمالا فکر میکنم کلام مرمومی روانی حالا با نظر تحویر ایشان باشه به باطن. بعد ارز کردیم که مقهوم شیخ انساری قدس الله و نفسه مواردی رو از استثناء صبر کردن در وقتی که مقن عباره ایشون خونده شد یکیش المؤمن المتظاهب و بفست البته بحث تظاهب بفست اینشالله تعالی تو بحث غیبت میاد ما توی باب سب نداریم که اگر متظاهب بود سب به جای زمین همچیزی نداریم رویشون مورد و بحث غیبت شون غیبت قوامش به غایب بودن اون چیزی است که بخواد گفته نشه. وقتی چه ظاهر بود دیگه غایب نیست اصلا ساله به انتباه موضوعه تخصیصا خارجه در بحث غیبت تظاهر تأثیر داره اما تو بحث سر الفاظ غیر مناسب مگر این که ایشان از در اینجا همون فعلی رو که تظاهره بشت داره اصلا شراب کاری میکنه بشکریم شراب خواهر بگیم فاسر نه الفاظ مثلا سنگ مثلا الفاظ قبیه دیگه اون الفاظی که در نظر ارخ شتم و آر و حساب میشه اونا نباشه مگر مرادی ایشان این باشه مروم شیخ و اونجا اون اشکال پیش میاد که اون مرمه سب باشه یعنی کسی که الانا شراب میخوره بهش بگیم شراب کور مرمه سب باشه مثلا صدق سبش مشکله بله, بله. خیلی بعیده یعنی این مطلب اولی که ایشون استثناء فرمودن قبولش خیلی سخته دیگه برای همین مقدار اکتفاق بکنم چون تو بحث غیبت خواهد آمد یه مقدار رو اونجا توضیح اون در غیبت درسته در سب این مطلب درسته یکی از موارد استثناء نستجیر و الله کسانی که اهل بدعت در دینن حرف های نامربوط میزنن نسبت های نامربوط به شریعت میدن اشتحال های غریب افکار عجیب غریب رو نسبت مید این هم مورد دوم نیست که مرموم شیخ فرمونه سب به این شخص جایزه این طور استدبار. بعد مرموم آقای خویی فرموندن قد روایات روایات المتظافره علاجواز سب المبد اف الدین هم سفره که این چاپ نجم و وجوب البراعت منه و اتحامهی اینشون گرم روایات المتظافره این شالا از خواهیم کرد اون که به عنوان اهل بدعت و کلمه یه توش آمده یک روایت فقط هنوز برای اون من سانی پیدا نکردم مگر یک روایتی که در باب به, به اصطلاح بعضی از کسانی که در زمان قیبت سغرا لعنشون صادر شده از طرف ناهی مقدسه توی بعضیشون داره الفاجه مثلا بگیم این سبب که در اونها بعضیاشون اونم یک مورد طالب به نظامیه موردالا با قطع نظر سندش اما اینکه ایشون فهمدن قد دلت روایاتو المتظافره بله ایشون تقدر در حاشیه یک روایات کردن که می خودم شانا بعدم فهمدن به غیر ازاله که من روات المذکوره فل لعبواب المذبوره تو اون عبواب مذبوره چیزی بین این وجود نداره ولکنه ظاهر انهو لا وجه لجه من المستثنیات. این جای استثنان نیست همونه یکیه همینه یکیه توش بعد فکش رو منصف به هم و هم و الگور هم و و باه تو هم. همونه دنباله همونه باه تو هم دنباله همونه ایش رو میگن استثناش هم درست نیست نه نو امکان المراد بیا المبد فل احکام شریف ها و متجاهرون به و امکان المراد بی هی خب متجاهره به فس مثلا بهش بگیم بگیم ای کسی که از دین خود؟ تو این درد ثابت مبدع فرعقائد و اصول دینی فاو کافرون بالله العقیب فیکون خارج عن مقام موضوعات لعدم کونه متصفا ایمان از کنم که اگر آیان کتاب وشائل رو داشته باشن در جلد چاپ قدیم منایربانی جلد 11 و در این چاپی که آن آلوه انجام دادن جلد 16 بعد از ابواب جهاد عدو و جهاد نفس امر معروف و نهی ابواب الامر و نهی باب 39 ابواب الامر و نهی وصاخر که جای جلدوش از کنه چون در این کتابی که به اسم مجموع برجیدی جامع الجامع احادیث جمع آوری شده یه مقداری روایات بیشتره من از این کتاب فعلا میخونم از این چاپ آخرش جلد گیجده از این چاپ آخرش صفحه 294 باب نوه از عبواب امر معروف در کتاب وساهل باب نونزه سی در اینجا باب نوه ایشون عنوان باب رو خب این آفازل معاصر یعنی ای این مال معروف رو جدی نیست عنوانی که ایشون خودش زده اینه باب و تحریم البد عطف الدین که خب اینجای بحث نداره به حرمت مصاحبت اهل البدع و تعظیمه و وجوب براعت انهم وجوب براعت یه صبر نداره توش و تحذیر ناس منهم و اظهار العلم اند ظهور بلعه عنوان باب رو اینجوری براداده به نظرم میاد احتیاط کرده کلمه صبر رو از عنوان برداشته اما در کتاب وسائل عنوان سب تو باب تو عنوان ها اشتباه نشد در کتاب, زن. کتاب وسائل پیش من نیست از آقایون کامپیوتر آورده اصلا خود صاحب وسائل ولی که شده آی خوئی تصوور سنه روایات زیاده چه بده عنوان باب قرار داده خود صاحب وسائل کلمه سفر عنوان باب قرار داده خوب دقت و من سابقا یه توضیحاتی راجع به تنظیم احادیث عرض کردم دیگه اینجا جاش نیست یه مقدار عناوینی رو که مرحوم صاحب وسائل میاره در حقیقت از کافی گرفته مرحوم کافی این روایت رو آورده در باب ایمان و کفت. باب و اهل از اونجا اوورده عنوان سب و اینا رو نیوورده و مجالسه و هم نشینیه با اهل المعاسی عنوان وسائل اوورده این باب وجود برای از من اهل البدن و سب بهن ببینید سابل این نکاس فنگیز که خیلی زریفه ساب وسائل عنوان حدیث رو تو عنوان باب گرفته و سب دهند. من احتمال میدم از استادسانان روایت متاضافه شاید عنوان باب رو دیدن خیال کردن تمام روایت باب توی سب داره یکیش توی سب داره تمام روایت نداره. احتمال من می نام چون شعنه استاد عجله که اینجا تر روات متظافهره و حتما دیدن کتاب بیا روات باهله که روایت, با. روایت, با روایت متاضافه. این فقط یک در روایته دوسام نداره. کلمه سط فقط توی یک روایته که هم عرض کرد و هم تو کافیه. فقط در کافی آموز جای دیگر نیومده چون در بحث شواهد روایت ما باید دراسات که مراجعه کنیم از این جهت خیلی اثر داره. این تربد شدم شاگردشون مقره نوش روات بود اضافه چند استاد عجل در این حرفست. الان که به مکان عنوان با عنوانشون که اوورده وجود براعت منو مغوم سال و سال ربت دهیم. حالا ما روایات رو میخونیم چندتا از این روایت رو تا ب آیا میشه متعرضه اون شد یان. از کنم که اینجا مقدار زیادی از این رواست و حوضه که مراجعه کنم البته در وسائلی که من چاپی که من دارم نوشته محمد ابن محمد ابن حسین اون غلط چاپ شده حالا ندارم در این چاپ آلالبیت درست چاپ کردن یا نه بخون روات حدیث شماره یک همون برا. آلالبیت در محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن خرابه حاشینه مصدر مستب... اینم غلط نه. آیه آمده یعنی هم... این درسته این درسته. در نص... معلومه این اشتباه تو نسخه خود بچائل بوده از اینکه در هر دو چاپ محمد ابن محمد محمدی نسخه که نداریم. حتی اینجوری بوده محمد ان محمد بن حسین. محمد در اطلاق در کلمات مرحوم کلی نمیخواد محمد بن یحییا استادیشون ابو جعفر محمد بن یا اتار بمی قدس الله نفسه از مشایخ کبار و اجلا محمد ابن یحیی ان محمد ابن حسین این درسته ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی بزنتی معروف رضوان الله علیه اجمعین ایشونا که از اجلا فائض هست ان داوود ابن سرحان سرحان یا سرحان در بغات حرمانه گوردیه ان داوود ابن سرحان یا سرحان ان ابی عبدالله سند معتبر صحیح یعنی داوود ابن سرحان هم شده اونام که هر از اجلا هستند هر ست محمد بن یحییٰ و محمد بن حسینی بن خطاب و بزنتی همه از اجلال هستن در آن دومین سرحانم توصیح شده نبی عبدالله وقتی مشکل دیگر کار این رو باید غیر از این فرادی که داره غیر از این داره قال, قال رسول الله اسناد رو به رسول الله من در این حالا شما دولت چند تا کامپیوتر هست نگاه بکنیم تو این جمع مفهره که مال کتب معروفشون هست این من پیدا نکردم فعلا در بین اهل سنت این حدیث رو پیدا نکردم احتمال شاید جای دیگه داشته در کساب غیر مشهورشون باشه حال من این رو الان نایدم قال رسول الله و لذا مشکل این حدیث این بیشه که احتمالا مثلا یک نقل معنایی چیزی شده باشه یا کم و زیادی قال رسول الله اداره اهل الریع و البده من بعدی فعظه رول براعت من هم. این درسته. حضاره روی برایات درسته. و اکف رو منصف بهه. این کلمه خیلی مشکله. این مشکل کارش هم یه کلمه است. ولقود فیهم. اون قود فیهم هم اشکال نداره. بگی این ها افراد خوبی نیستن. سر یعنی الفاظ زش به کار بردن. شهرم کردن. این, این مثلا در آن روایت نهج البلاغه که خوندی این خوندین، خوندی، خوندین، امیرالمومنین از اصحاب شام رو سب نکنید. لا احتره لكم ان تكونوا حبابی شتمی یا تو بعضی از نسخ داره لهانی، با اینکه اهل شام مظهر کامل اهل بدع معاویه و اصحابش هستند. مع ذالک می‌بینیم که امام سلام الله علیه می‌فرماد انی اکره لكم ان تكونوا حبابی. این مشکل کار این کلمه ای و عکس اون من سب و القول فیه این هم مشکل نداره و الوقیعه و باهتوهم این کلمه باهتوهم همین جا آمده تا اونجایی که من میگونم باهتوهم و سب و وقیعه فقط همین روایته کل این الفاظ تو همین روایت واحد است البته ارز کردم ادهی شاید اینجور فهمیدن که بختان یعنی به اینها نسبت دروغ بدین مثلا بگیم این آقا از طرف مثلا با کلاسوس های مثلا خارجی رابطه داره با محافظ سری خارجی رو نسبت های دروغ به این آبدیم باه تو و لیکن ظاهرا مراد این نباشه ظاهرن علا تقدیر قبول صحب نسخه باه تو هم یعنی انسبوهم هم الال احتمالاً احتمالا مراد این باشه یکیل این اهل بده که به اسلام نسبت میدن به رسول الله نسبت میدن به امیر المومین این افکار و آرار نسبت علی الله بحتان باه تو هم یعنی بگید اینها که این حرف های نمروطه میزنن اینا بختان برمذهب میزنن میگم نم. حالا این چون باب مفاعله است باب مفاعله به کار برده شده ظاهرا به هر دو معنی شاید بخوره اما احتمالاً فکر میکنم مراد دومی باشه که لا معوف الفساد فل اسلام چون اگه اینا رو بختان بهشون نزنید نگه اینا بختان و از شریعت دروغ میگه اینا تمع میکنن فساد فی الاسلام و یحذر همون ناس مردم هم به دعتهای رو یاد نگیرن یک توبه لا هلکم به دالکه الحسنات و یرفه لکم به درجات فی الاخره ظاهرا حدیث رو این من تا اونجایی که از کن من تطباهم کامل نبود تا اونجایی که من دیدم در این موجه هم و فهرست دو تا یک ماد دشیدم پیدا نکردم فعلا پیدا نکردم که این شبیه این معنا از رسول الله نرد شده باشه اونی که الان مست، مست در این استثناث به تعبیر مرمون شیخ استثناث دوم اهل بده همین روایت واحده است. از کنم ما اصولا این روایت در هیچ مستری فعلا نداریم نه مرسلن و نه در اید مرسل این روایت الان فقط در کتاب کافی آمده و در ابواب ایمان و کفر که از در جلد دو همچه که اینجا آدرست درسته, درسته تو باب مجالست اهل المعاصی عنوانش اینه عنوان باب هم اینه ولی زا روایت دیگه هم ورده که رفتی با عنوان باب نداره راست است که مربوط به این باب است علایه‌هان فعلا انصاف قضیه جمع شواهد بر کلمه سب الان خیلی مشکله ما با الان چون خود ما هم که خبر واحد حجت نمی‌دونیم با این شواهدی که ما داریم در خارج حالا شواهد عادتاً نشون که این کتاب بزنتی باشه عادتاً اینطوره یعنی محمد بن یحیی و محمد بن حسین ادم تقریباً به کتاب بزنتی. کتاب بسنتی هم هر کدومش باشه کتاب خوبی یعنی کتاب جای بحث نداره به لازم معصری هم مشکل نداره به لحاظ سندری هم مشکل نداره لکن انصافت الان شواهدی که ما می‌خویم این تعبیر رو مثلا اون بحث نعم رو بنی هاشم به سبه ما من منه اون کلمه به سبه ما یعنی اولی و دومی اون هم ارکان ثابت نشد اون خب سند ضعیف بود توضیحاتش دادیم اینجا سند صحیح به نظر من مثلا عکس اون منال قول فيه کلمه سبهم سب واضحه نباشه استعمال این و شواهد دیگه هم معید نیست رواس دیگه هم معید نیست عمل خارجی دیگه ای هم معید نیست کلمه صبر رو تایید نمیکنه و راه دیگری که میتونیم حالا غیر از این که عرض کردیم در بقیه مسائل مثلا تو همین بابی که ایشون آورده در این باب نه البته در کتاب جامال احادیث هم شماره احادیثش خیلی دقیق نیست آلا من نمیخوام وارد این بحث بشم چون یک مقداری از محل کار ما خارجه نمیخوام وارد این بحث بشم لیکن شماره احادیثش خیلی دقیق نیست شماره احادیث چون بعضی رفتا مکررات هم دو تا حساب کرده مجموعاً چهل و شیش تا حدیث اوارده تو این با اکتاب جامال احادیث تو وسائل اینقدر نیست این باب وسائل در دوازده است در این باب چهل و تا حدیث رو در همین باب نو جامع احادیث البته اینو دقت بکنیم اونی که شماره زده یعنی اونی که بابت خودش احادیث شماره زده تا سی و هشت شماره زده بقیه تقدم چهل و شیشتا روایت صورتی این باقیشون رو و در تمام این روایت این مطلب منحصر به همین روایت هست در کل چهل و شیشتا حالا البته باز هم راجع به اهل بدع روایت زیادتری داریم اینکه که منحصر به این مقدار باشه یعنی در تمام روایاتی که ما در اهل بده داریم این مضمون منحصر به فرده وقتاً سیره خارجی مثلاً بد نشون بودن که یک صاحب به بود این همه روحات ما درباره در باره ابو هنیفه که ازا میفرن باره ساحب و سب بشه کرده باشن تصادفاً خیلی هم عجیب این هم جزای عجایب معجزات الهی هست اون مقداری که در کتب اهل سنت خصوص از مالک و غیر مالک و بخاری و بزرگان حدیث سناس شد بزرگان حدیث اهل سنت در زم و مزمت ابو شده. عشر معاشار اوطرو از ما نیامده عشر معاشارش تو رو تو بالا نیامد اون مقداری که راجه به ابو حنیفه چیزی شبیه صدام داره از مولد نقش شده و اسناد متعدد که کان یقول ما وذفه الاسلام مولودان اشع من حنیفه میشونتر از این شونتر از هر خداشون در دین اسلام خارج این کلام اسلام مال مالک و مسلم هم حتی صحت سند صحیح داره من نمیخوام الان وارد بحث تاریخی بشم جده کازه کتاب تاریخ بغداد نگاه فرمایید ایشون و مسلم هم هست ای نه این جالا مثلا سرندش قابل خدچه باشه سندش کاملاً صحیحه که مالک راجبه ابو حنیفه گفته عبایی کبه ماکان مثلا تو رو با تو این عباره نداریم ابو حنیفه ما نداریم حالا داریم که ما فهمدن که لا ترسوه ابو حنیفه اولو منقاس ابلیز داریم اما این تعبیر حتی همین تعبیر مالک نه نهنه هست فقیه قول خودشون ماکان، انصاف قضیه این از که ما وقتی مجموعه روایات رو نگاه می‌کنیم در خود حیات امه در سیره امه در سیره امیرالمؤمنین در غیر اینها انصافاً این مطلب رو نمیتونیم ببینیم اما البراعته به هم این چرا؟ ما این رو به تعابیر مختلف و قول فیهم و وقیعه اصلا باهتوها به این معنی که از هم. ما به تعابیر مختلف تعاوید این طوری هم داریم البراه داریم مثلا من مشایلا صاحب بدعتن فقط مشایلا حد مل اسلام من تبستم فی وجه صاحب بدعتن در این روایت داره فقط اعان علا حد مل اسلام من اهدت صرف الاسلام او و مقدسن فعلیه لعنت الله و الملائکت برناسن روایات زیاده یه ایرانی که دوتا نیست ما نمونم اما اضافه بر تمام اینها بله با و دقیقا گفتن و گیرت همین معلوم نیست بقیه غیبت وقعتیه اعم از غیبت نه معلوم نیست غیبت باشه پشت سرش تجربه بشن بگیم البته یک روایت هم دارن اهل سنت اینم هست که اگر اهل بدعه اره بدعت رو دیدین و وروشو میگن استغفر الله لا الله و اتو بگه اینم بگیم مثلا مثلا لی بدن نفسیم چی دیبلک استغفر الله لا اله الا الا الله لی تعبیر میام اهل سنت دارن اما روایاتی که اضافه بر اینها ما اده از روایات داریم که در زمان قیبت صغرا راجع به یک اده از موکلا و افراد منحرف یا به تحبیر نموز ما مبتدر و صاحب بدع اونها هم جاری شده البته این روایات اسانید خیلی واضحی نداره اما چون اده از روایاته حالا ما اینا یه مقدارشه میخونیم یکیش مثلا این در این کتاب از صفحه دیویست و از این چاپی که من الان هستم در است از صفحه دیویست و نورد و از این روایات رو داره جلده هیچنه تا تقریبا بله صفحه 300 تقریبا و 4 سه لازم خب گفتم تو همزه نگی نگیم که من در از اینجا عده از روایاتی رو ایشون به این مناسبت که درباره قده بودن که در زمان قیبت سغرا منحرف بودن من ارز کردم در قیبت سغرا مرموم عثمان بن سعید امری بعد دستالله ها نفسه حدود شش سال دوران بکالتش بود مرموم عثمان بن سعید از زمان امام حادی بکالت داشت بعدم زمان مابع اسکری بعدم زمان بقیت الله شیست سال تمام بیشتر طول نگیش 6 سال پنج سال برای از سال 266 و شست و پسر ایشان ابو جعفر محمد ابن عثمان تا 304 یعنی حدود 38 سال ایشان زمان ایشان یک مقدار زیادی افتراغ های طائفه زمان ایشان شد یه کسانی که مندعی بابیت شدن و جدا شدن زمان ایشان ایشان مرد فوق فوقلادهی در حوضه های ما شعنیت علمی ایشان کمتر شناخته شده همین دعای افتتان به ایشان نسبت داده شده محمد از موزا نر نکرده حالا باز خودش نشین خودش یک ادعای ها و افتراها همین نو ها محمد ابن نو سری معروف زمان ایشون جدا شد زمان محمد ابن عثمان در هم بغداد هم قبول نکرد محمد ابن عثمان رو بعد برای خودش ادعای نیابت کرد و وکالت کرد بعدم چون معروف شد به کار دیگه فرار کرد دست رو آورد لبنان جبال لبنان که الان بهشون میگن یعنی هایشان همین علوی هایی که در شام هستن این نوسیری هست اتباع محمد نوسیر هست که در اونجا البته افعال زشتم بشن سورت داده شد و, و هر حال یکی هم احمد بن هلال البته احمد بن هلال پیر مردم بود این خیلی هم گفت که با وستباسی صحبت کرد با ابو جعفر مخالفت سریع هم نکرد من چون یک چهری تقریم بقول این روزی ما زوال و برق و تقریم و و چهار حج رفته بود. بیز حجش هم پیاده از بردا خیلی حالت به قول اموزی ها صوفی متصنع در رواید داره حالت از دو هدوی داشت ایشون هم در لعنش روایاتی وارد شده کسانی که بعد از این فتره بودن در لعن ابن عذاقر حالت این چه اسمشم عذاقر که شل مقامی معروف این شل مقامی زمان حسین روح بود حسین رو از سال 304 تا 324 ایشان اینچون هم حسین روح جزوه شخصیت های گذار دوران قیبت هم. اون نائب اخیر علی ابن محمد سماری هم مثل نائب اول خیلی تأثیرگذار گذار نیست. هم مدرش کم بود هم خیلی تأثیرگذار گذار نیست. تو چهار نائب معروف از همه تأثیرگذارتر گذارتر این دومیه. مرحوم ابو جعفر محمد ابن عثمان. بعد بینن البته در قیبت چهیل توسی مرسل نهال کده روا محمد ابن عبو این رو من توضیح دادم این روایت محمده از کتاب رسال امهشانه آل خرج علال امری این امری در اینجا امری دومه یعنی محمد ابن عثمانه عثمان بن سعید. اطلاقش اطلاق کیا؟ امری نتراب دارم اطلاقی نتراب سر شخصیت اجتماعی تأثیر گذاریش بیشتر بوده پدره سیقتر و جنید قربتر و خوب پیرمرد و وکیل پدره دو تا تو توثیق داره هم امام هادی فرمودن هم امام عسکری بله علی امری ثقتی فصنعله و اعته فنه ثقت الامین این تعبیر رو هم حضرت هادی دارن راجع به امری هم حضرت عسکری دارن فوق العاده است مرحوم امری بطل لكن مشهورترشون امری پسر بعد حضرت هم و نحن ند را الى الله تعالی من ابن هلال. هر کردم ابن هلال 268 وفاتشه. اشتباه نکنید. دو سال با تسره بود. 266 وفات عمر پدره و ابن هلال در اون وقت شش شادش 90 سال عمرش بود. ابن هلال میخوره به زمان حضرت رضا و یک مناسبت از کردیم یکی از شخصیت‌های علمی بغداد هم بود احمد ابن هلال احمد ابن هلال شخصیت علمی بودی که از شخص جندی دو سال آخر عمرش از شخص جندی شد به خاطر محمد ابن عثمان شخصیت علمی هم بود و تا اونجایی هم که من خبر دارم شاید ترین کسی که تعبیر به اصل کرده همین احمد ابن هلاله همین احمد ابن هلال مولا تقریبا مثلا کسی داشته باشیم که راجی بود مثلا روا اصول از حابنا که قدیمتر از احمد بن هلال باشه معاصر حدا عزادزا ایشون اون زمان درک کرده بعد قاعدتا مثلا زمان عزادزا 20 سال 30 سال بوده یعنی چند نبوده ایشون درباره شیخ الروای اصول, اصول اصحابنا شیخ راجع به احمد بن هلال داره قدیم‌تر از او فعلا نداریم باچه به اصل اینا بوده سوالی جزانه که جاش اینجا نیست علایخانه محل کلام بوده و حتا از سعد بن عبدالله نقل شده که ما سمعنا احدن و جهل تشیعه ال الناس الا احمد بن الهلا که اول شیعه بوده بعد ناسبی شده که مرحوم شیخ هم دار آخوی هم دارن ما که این دی که دین نداشت، این وقتی شیعه بود، وقتی ناصبی، این ال قلوب رنگیزو قلها شده، اینم بود. و از مشهور علما تضعیفش کردن، قبول نکن آخوی خوئے قبولش میکنه. آیا خوئے میفرهم چون نجاشی گفته صالح ال ایشون قابل اعتماده ما یه توضیحات کافی دیم این اینجور نیست که نوشته شده احمد بن هلال شخصیت علمی بوده مقدار زیادی کتاب اصحابه نارد کرده انصافاً فی نفسه خیلی ضعیف نیست ناسبی هم نبوده این ناسبی شوخی کردن اینشون با نائب دومان در اون زمان هم یک چهره مثلا معنوی داشته و امکار نایب دوم کل امامت برگذیر سؤال می بود چون رابطه این مردم ناشتن به اصطلاح تبدیل هم دوران حیرت چیه در حیرت شریف بود امام غایب شده بود حالا یک شرکی داره که در جای دیگهش من توضیحات شدم اندان جاش اینجا نیست خلاصش اینه که مشکل احمد ابن هلان نسخش که قابل اعتماد نیست خودش مشکل نداره لذا نجاشین که سالح روایه و کرد. حد با نجاشیه ما مشکلاتمون در سر احمد بن هلان نسخش قابل اعتماد نیست این دو تا بحثه وثاقتش حرف بدی نیست ناسبی هم نیست به مخالفه اینم یعنی خب حالا آره می واقعا حسن و کرده شدم بی عقل کم عقل من اوناش نمی دارم. به هر حال قطعا کسی در اون زمان بخواد در نائب دوام تشکیک بکنه قطعا به مسئله امامت می خورد یعنی مسئله شوخی نوبود و لذا چند تا توقیید در لعنه ایشون در و از اجایب کار از واقعا از اجایب کار <تصفيق> یکی از این مخدمات هم خراب باشه یا واقعا این توقیهات نبوده بعضی از توقیهات در حسین روح در آمازه. یعنی چند سال بعد از مرگ احمده نهلا این خیلی عجیبه <تصفيق> <تصفيق> شاد همه نیموندارم یعنی واقعا تیروی داشته بابو... چون این توقیهات در زمان فی همه خرجه الال امری مع بله. از حال توقی داری بله از امام اسکری خیلی عجیبه این خیلی عجیبه نمی فهمی. از حسین روح یعنی ما از داری هم امام اسکری اشتباه کردم حسین روح نوبختی ایشان درش داره بله این خیلی عجیبه این یک چیز غریبی است که مثل حسین روح مثلا در اینجا داره صفحه 301 سندش هم نرم میکنه سنده جون تصالان صحیحه خرج شیخ ابل قاسم علی حسین ابن روب فی الهجه سنده اسمه اشتر و سلاسمه این یعنی در در حدود چههد و چهار سال بعد از فوت به اصطلاح احمد ابن بعد در آخر این توقیه کاره این شاد بخونیم توقیه لطیفی هم هست خیلی شوارد لطیف تاریخی داره موزی اون روز که شاد نرسیم رو بقیه رو بخونیم ولی هلالی تا سال 312 از کنم این احمد بنیلال بزبه 20-60 عشق مردی هست دنیا رفته این 44 سال بعد از مرگش اگر سند توقی هم صحیحه شما ارز می کنم بعضی از نکاتیست که برای دوران غیبت صغرا مفید بازش می کنه همیشه نه اما بازش در از این که خیلی عجیبه یعنی جزء عجایب کاره که اسم او هنوز تا سال دوازده از طرف بقیۃ الله الاعظم صلی الله علیه و علی آبا طاهری نسبت به حسین روح نوبختی صادر شده البته حسین روح نوبختی به لحاظ اینکه به اصطلاح ما اصاله‌ی امروز ما یک شخصیت اجتماعی بود خاندان نوبخت خاندان ایرانی بودند یعنی بخت نوبخت خاندان ایرانی بودند بیشترش هم اهل علوم بودند یا ریاضی بودند یا طب بودند نجوم بودند فلکیات بودند کلام بودند متکلم بودند بیشتر خاندان نوبخت یک آقای هست از از دانشگاه از جنب کرد خاندان نوبختی کتابی نوشتن هم خاندان نوبه. زحمت کشید. ایده از اینها جزء بله معروفه کتاب. ایده از اینها جزء بزرگان علم و اون زمان بوده. ولی اینا خودشون، خیلی از این که حالا شخصیت‌های علمی بودن، خیلی از این که مثل خود مرحوم نوابی در کمال ورع و تنگوا و جهات خاص بود، خیلی مرد روشن، مرد روشن، فکر خاندان علمی معروف، یعنی توی نواب اربعه به لحاظ جهات اجتماعی و علم، علم ساینس به قول علم فیزیکو شیمی رو اینجوری صدا، که شکلهشون به راتویو وقتی نمی‌رسن. که احتمالا ابداع بود که همین کتاب تکلیف یا فقره رضا نوشته بشه، یک نوع تقاربی بشه در زمان به بین قم و بغداد. مکتب قم و بغداد و هم نزدیک بشن. و شیعه رو از حیرت در مقام فتوا در میارن خیلی واقعا مرد روشن فکری بوده، مرد فقرهاده‌ای در این جهات و این کتاب تکلیف انصافا البته به نظر ما اگه کتاب تکریف همین فقوریزا باشه این کتاب فقوریزا به قوم نزدیکتر تابع وقت داد اینشالله وقت دیگه با زوجه به فقوریزا صحبت می‌کنیم. الان این ماکان در این توقیق داره که و نحن و نبراه اللہ تعالی من ابن هلال لا رحمه الله که معلومه فوت کرده بوده و من من لا یبرعومن لا رحمه الله و لا رحم الله من لا یبرعومن فعلم اسحاقی در همون منطقهی بوده من خراسان بوده کجا بوده و اهل بلدهی من ما اعلمناک من حال حال فاجر این تعدیل فاجر اینجا آمده اگر این رو سب بدونیم اینجا آمده چون ما از کاریم با شواهد مراجعه بکنیم تا اونجایی هم که من دیدم حالا چون خونیم بله این به یک سند دیگری هم آمده این سند که الان مرسله اینجا تعبیر حاض الفاجر آمده یک جای دیگه هم آمده در کتاب کشی ایشون از علی ابن محمد ابن قطعبه نشابلی نرم کنه خود کشی قال حد اصنی ابو احمد ابن ابراهی مراقی که نسیم قال ورد علالقاسب ابن العلا نسخه و خارج من لعن ابن هلال این اصل لعنه ابن هلال توسط قاسم علا میگن رقیل بوده خیلی اوضاعش به اون دقت این سند خالی از ابهام نیست و کان ابتدا و ذالک انکت علیه السلام الا قوام ظاهرا عبارت کلنی مختصری بوده از این نام مفصل توقیه مفصل این توقی رو میخونم به خاطر یک نکته ای که داره کتب علیه السلام الا قوام به عراق نماینده ای که داشتن کسانی که در, در عراق بودن اح درش شو در بغداد بود احمد احضر رو از سوفی یا متسنده این سوفی از متسنده به ندادان سب نیست.یعنی خودش نمایش شده اینطور رییا کار. قال و کان میشه احمد نهال هلال، نهور قطکان تنها تهج ارند و خسین هجه از بغداد. 4 بار از برقداد حالا من اون با۷ تا سال شد 5 چه ه ر.شون من ها علاق قدمه 20هج پیاده رفت. قاله و قدکان روات اصحاب نابل اراق لقوب این درسته و کتب و ان این هم درسته اینم درسته اما مشهور بین علما در روایات ما در کتب رجالی، در کتب حدیثی، در کتب فتی در سندی که احمد ابن هلال هست مشهور اینه که ضعیف میدونم آهای خوی هم خلافن للمشهور ایشونو توسیق برمودن و گفتن ناصبی بوده من چسازم میگه ایشون نشسته من هیچ دین ندیشترام دو چهار من چون گوی قالی بوده گوی ناصبی بوده دو طرف خط متفاوضت کاملا این نیست ناسبی به معنی ناسبی میگه حتی در بعضی از ها داره وقف علی ابی جعفر یک علیه السلام اضافه کردن مثلا حتی بعضی گفته که از, از فرقه‌ها واقفه بر ابو جعفرشون واقفه بر حضرت موسی جعفره ابو جعفر هم حضرت جوادین یک ریم در درست کردن نام واقعیه و حضرت جعفر چه از این عبارات این علیه السلام اشتباهی که از نصاف نوشته ابو جعفر محمد ابن عثمان انوری فق امام و رقم اعلی بی جعفر محمد ابن عثمان ابراصی به بی جعفر جواد نداره این جایی جا که علیه السلام اضافه باید کردن بعد سرغ درست کردن الی تمام این اوهام مم مالا اساس ده دقیق میفرمایید بله و كتبوا من راستم هست بلکه من بالاتر گفتم ما تقریبا اولین کسی که داریم که گفته این اصول اصحابه ایشانه لکن حق با نجاشیه و با بالفعل هم داریم ما اینا رو در محل خود و مفصل اصبا کردیم. بالفعل هم داری احمد ابن هلال از یک کتاب مشهور روایت نقل میکنه هیچ کس غیر از اون نقم نمیکنه. این مرادیو آرخ ویون کرد او دکت بکنیم ما دیدم الهلال از یک کتاب مشهور روایت نه، نمیگه هیچکس نمیگه. نمی، نمیگه چی میگه، خودش دروغ نمیگه، ناصح غلط بوده. یعراق و یام کرد. نه اینکه این که این دروغ بوده. خب مثال هم همین که الخمس علی هدایا کههای خویشم فتوا میزن دیگه. آقا این اجماعت باهده. اجماعت خمس در هدایا تو هدیه نه عنوان جایزه، جایزه رو دیگه نمیگه. که میگه خمس در هدیه یکیه فقط اونم احمد بن هلال بن ابي معلوم میشه در نوشه ابن ابي عامر که میشه احمد بن هلال بوده تو نسخه دیگه نیامده این روایت هم در هیچ مصدر از هاویانه نیامده نه از ابن ابي عامر نه احمد بن هلال در کتاب محمد بن علی المحبوب از محمد ابن علی المحبوب کسی نه نکرده الا ابن ابي ذرغن پنجم فقط ششم مثلا ابن و تو برداشت ششم کرده نمیکنه. آی خویا و هم قاضی خودشون که احمد بن نهلال مثلا و ساله روایه را قبول میکنه و از ابنبی آمر رو دیگه مشکل نداره. مشکل در وسعت نیست، مشکل در مصدره، نه در وسادره. اینه که نجاش میگه قاضیه رواجی یه آرت یو و یون کر. راسته حرف فدغی از ما. جای دیگه هم پیدا کن آنگی مجبورم از اون بخش احمد بن مشکل احمد نهلال اینه. ناسبی نیست از غلوب و معلوم نیست باشه صوفیه متسنده ممکنه من چون اون صفات خارجیش نمیدوند اما هم وقت بر ابو جعفر امغی محمد ابن عثمان نه بر حضرت جواب سراطه براسه با موانی تر فرمودن که وکت و من لان کرو ما ورده فی مزمته خیلی عجیب اینقدر این شخصیت داشته انکار کرد فهم حمل حمل و القاصون علا علا ان يراجع في امره گفتن او در مرتبه فرج الی که کان امرنا نفع الیک فی المتسنه لا ابن هلال ابن هلال لا رحمه الله به ما قد علم لم يزل لا غفر الله له ذنبه ولا او اشرف اینو خوبه اینا صبنی هست یداخل فی امرنا بلا اذن مندنا در کارهای ما دخالت میکنه بلا رزن لی استبد براییه فیتها ما من دیونا اینجا نسخه خیلی مستربه زونوبنام داره زونوبو که معنا نداره دیونا هم خیلی معنا نداره چیه لا یمزی من امرنا یا الا بما یهوا خودش برای خودش تصمیم میگیره و یرید او اراده الله بذاله که یا ارداه الله ارداه یعنی جعله و اوقعه او فینار جهنم فصبرنا علیه حتی اینجا تبره نوشته بطر الله به دعوت ناه عمره بطره باز قطع الله به دعوت ناه و کنها قد عرفنا خبره قومن من موالینا فی ایامیه لا رحمه الله و امرناهم هم به القاعدال که الخاص من موالینا و نحن نبرای الله من ابن هلال لا رحمه الله و من لا یبر و اعلم الاسحاقی از اینجا با اون روایته سلم الله و اهل بیت من ما اعلمنات من حالها در فاجه تبدیل فاجه جونی که همونه دو تا نیست و جمعی منکان کان و یعنی سعلق من اهل بلده و الخارجین کسانی که دو شهر میان یا خودش شهرین و شهر دیگه میان جا. و من یستهق و انیت تل احلا و این عبارتی که ما چند بار خوندیم در خلال ابهاز و مرحوم ناینی هم بهش تمثل کرده و عمده دیل حوججره خبر سقا پیشایی همینه. ف نه لا عضر احد من موالی این منحطراً همینجا آمده جای دیگر نمید. این تمام تو خو بر هم یک کلمه ف نه لا عضره لعهد من موالینا ها، ف تشکی فی ما گرری هم داره یا هم داره ان سقاات قد در ععرف و بهاندنا و ها و نهحملله ایاه و و عرخ نامه كون منظارک ان شاء الله تعالی این اطلا عزل عہد موابنات ما اونها این تا که ازم سعد این راض هم درست نیست خود این راض هم سردهوشن نداره و صلی الله علیه و سلم